از سید قریش قذوینی پرسیدن که از عرفا بودند. ایشون قذوینی بوده قذوینی ها خوششون میاد که قذوین اینقدر آدم خوب داشته انشالله قذوینی هم که الان هستن تو مالا رو و از عرفا مبجه هستن بله حلومه تبا تبایی خب شاگرده محوم قاضی، آسطلی و آبازی رحمت الله علیه احسان و ایشون هم شایگرد پدرشون بودن آسطه حسین عوازی و ایشون شایگرد محوم امام غولی نخجوانی بودن محوم نخجوانی شایگرد سید قره شغزبینی از عجلا بودن خیلی انسان بزرگیه منتایی اشتباهی شده ایشون دو تا پرزن داشتن آسد علی و آسد حسین، آسد یکیشون حالا رو جوانی میره با سوپیه زهبیه همراه میشه. بعدم در تهران یه مدتی ریاسته و به اصطورت قطب زهبیه میشه. چون ایشونم... تظبینیه و پرزند سید قریشه گاه سید قریش رو به این انوان معرفی معرفی معارفیکه که رئیس صفیه زهبیه بوده اشتباه